Thank you. بیم میخواید کار کنی؟ روی تپه های بیرون شهر بودیم که موضوع را به پاتریک گفتم از من خواسته بود همینطور که با دوچرخه پشت سرش میروم برایش وقت نگهدارم. دارم نصف مسیر 26 کیلومتری را رفته بودیم دوچرخه سواریم افتضاح بود شاید کلمه از فیزیک سر می آوردم ولی هیچی از دوچرخه سواری نمیدانستم. در نتیجه همش منحرف می شدم و یک سره داشتم ناسزا میگفتم و با عصبانیت سرش داد میکشیدم. بالای شییکوت هیل که رسیدیم من دیگر به نفس نفس افتاده بودم و پاهایم مثل صرب شده بودند. همانجا تصمیم گرفتم موضوع را مطرح کنم. میدانستم حدود سیزده کیلومتر ساخانه مانده و فرصت هست تا دوباره شاد و شنگول شود. با تو نمیام نروژ برای مسابقه استاد ولی جلوتر آمد به طرف من برگشت همچنان میدوید وقتی دیدم اینطور تعجب کرده هول شدم و نزدیک بود بزنم به درخت چی چطور نمیشه کارم و ول کنم از من فاصله گرفت و به طرف جاده رفت سرعتش را هم زیاد کرد نکه تپه رسیدیم مجبور بودم کمی ترمز بگیرم تا ازش جلو نزنم خب از که این تصمیم گرفتی؟ پیشانیش قرق در دانه های عرق بود زردپیش از پشت ساقه پا دیده می شد. وقتی چشمن به آن میافتاد چندشم میشد. آخر <تصفيق> همان تزوی بودن سا تصمیم نهایی ما بگیرم ولی بلیط هواپیما بقیه چیزها رو برای گرفتیم یه پرواز ارزون قیمت که بیشتر نیست اگه نارد نمیشی سی و نوپان خسارتشو میدم موضوع پولش نیست فکر میکردم میای تا تشویقم کنی گفته بودی که میای. پاتریک بخ کرد. اوایل که با هم آشنا شده بودیم همیشه سر به سرش می و میگفتم آقای بد اخلاق. خودم خنده میگرفت. پاتریک چونن عصبانی می شد که اغلب اخمایش را از هم باز می تا ساکتم دم کند. اوه، بلکون بابا، من که دارم تشویقت میکنم نه؟ پاتریک متنفرم از دوچرخه سواری، خودتم خوب می دونی. همین جوری هم من تشویقت میکنم. یکی دو کیلومتر در سکوت رفتیم. بعد پاتریک دوباره به حرف آمد. صدای ضربه قدم های پاتریک بر جاده مسمم و خشن بود. در صورتی که من باید عصبانی می بودم. چون همه سربالایی آمده بودیم و حالا شهر زیر پای من بود. برای همین سخت به نفس نفس افتاده بودم. هر باری که اتومبیلی از کنار من رد میشد تلاش میکردم مانع بالا رفتن ضربان قلبم شوم ولی موفق نمیشدم دوچرخه قدیمی مادرم را برده بودم پاتریک اجازه نمیداد به وسایلش دست بزنم دوچرخه دندهای نبود و همهاش از پاتریک عقب افتدم. نگاهی به پشت سرش انداخت قدمهایش را کمی آهسته کرد تا من به او رسیدم چرا کسی و از آژانس استخدام نمی از آژانس استخدام کنن؟ بیاد خونه ترینر اگه قراره که شیش ما کار کنی خب مرخصی نیاز داری به این راحتی ها نیست چرا هست؟ وقتی شروع به کار کردی هیچ اطلاعاتی بهت نداده بودن. نفس در سینه حبس کردم حالا که خودم از دو چرخ سواری بی نفس بودم کار سختی بود چون باید بره سفر؟ چی؟ باید بره سفر برای همین به من نیتن نیازه که همراهش بریم نیتن؟ نیتن دیگه کیه؟ پرستایش که کارهای پزشکیشو میکنه همون جوانی که همراه ویلی دی. وقتی اومد خونه مادرم حالا قبل اینکه به میگم نه. هیچ سرسایده بین من و نیتن نیست. قدمهایش را آهسته کرد. سرش را پایین انداخت و به آسفالت خیابان زد اینقدر آهسته کرد که حالا عملا فقط درجا میدوید. لو چی شده؟ چون, چون به نظرم میاد مرز بین کار و چیزی که شان بالا انداخت طبیعی مخدوش شده. این یه کار معمولی نیست. خودت که میدونی. اما ظاهرا این روزا اولویت با ویلترینره. دستم را از روی فرمان دوچرخه برداشتم و به پاهای در حرکتش اشاره کردم و گفتم. اوه این دویدن برای تو اولویت نیست این فرق میکنه تو اختیار تو دادی دستش تلاش کردم لبخند بزنم تو میای دو منم مجبورم بیام دو صورتش را برگرداند مخر است پد، فقط شیش ماهه شیش ماه تا که اولین کسی بودی که گفتی برم سر این کار نباید باز خواستم کنی که چرا به کارم اهمیت میدم. من فکر نمی کنم موضوع مربوط به شغلت باشه من فقط من فکر می کنم چیزی هست که نمی بگی مکس کردم کمی طول کشید بعد گفتم این طور نیست. ولی نمیخوای با من بیای برای مسابقه. بهت گفتم که من آرام سرش را تکان داد. گویی صدایم را درست نمیشنید. بعد شروع به دویدن کرد و از من دور شد. از حالتش فهمیدم چنان عصبانی است که کارت بزنن خون نمیآید. وای پاتریک تو رو خدا نمیشه یه دقیقه صبر کنی تا با هم صحبت کنیم؟ اجبازی در آهنگ صدایش موج میزد نه زمان رو از دست میدم خب وقت رو نگه میداریم فقط پنج دقیقه نه نمیشه وقت ایجاد کنم قدمهایش رو کرد گویی جان تازه گرفته بود گفتم پاتریک تلاش کردم خودم را به او برسانم پاهایم روی پدال دوچرخه لیز می‌خوردند با خودم فحش می ددم. به عقب پدال زدم و کشیدم دوباره سرعت بگیرم پاتریک پاتریک به پشت گردنش چشم دوختم. کلمات از دهانم در رفتند و نفهمیدم دارم چه میگویم. باشه ویل میخواد بمیره میخواد خودکشی کنه و این سفر آخرین تناشم برای منصرف کردنشه پتریک پاتریک، هایی کوتاهتری برداشت و بعد آهسته کرد با فاصله از من ایستاد پشتش صاف بود آرام به طرفم برگشت حالا دیگر قدم دو هم نمی رفت. دوباره بگو میخواد بره دیگنیتاس هست اوت من هم همه زورمو زوره زنم. تا تغییر عقیده بده این آخرین شانسم به من خیره شد نمیدانست حرفم را باور کند یا نه میدونم مسخره است. ولی بعد منصرفش کنم در نتیجه نمیتونم با تو بیام چرا قبلا بهم نگفته بودی؟ مجبور شدم به خانوادش قول بدم که به کسی نمیگم اگه این حرف درست پیدا کنه خیلی براشون بد میشه. افتزا. ببین. خودشم نمیدونه من میدونم. قضیه خیلی بغرنجه. متأسفم دستم را به طرفش دراز کردم. اگه میتونستم حتما بهت میگفتم. جواب نداد. مثل شکست خورده ها بود. دنگار من کار بعدی انجام داده بودم پیشانیش کمی چین افتاده بود دو دفعه آب دهانش را گرد داد محکم پس لونا، الان فقط و فقط باید بودم خودم تنها دست به موهایش کشید قبول آب دهانم را گرد دادم و گفتم قبول بیافش لحظه لحظه‌ای طوری شد که گویی یادش رفته است چرا آنجا هستیم. بد راه افتاد. من ایستادم و تماشایش کردم که در جاده‌ی مقابلم از نظر ناپدید می‌شد. نگاهش مصممانه به جلو بود. پاهایش زمین را می‌پلیید. پس فردایی روزی که از عروسی برگشتیم درخواستم را مطرح کردم. کسی میتواند جایی به من معرفی کند که یک معلول بتواند کمی ماجراجویی داشته باشد. دنبال برنامه هایی هستم که افراد سالم انجام میدهند. برنامه هایی که باعث شود دوست افسرده فراموش کند در زندگیش محدودیت وجود دارد. دقیقا نمیدانم چه میخواهم. اما از تمام پیشنهادهایتان استقبال میکنم کاملا هم است. زنبور پرکار وقتی دوباره وارد سیستم شدم با ناباوری به صفحه مقابلم چشم دوختم. هشتاد نه نفر جواب داده بودند بالا و پایین صفحه رفتم اولش شک کردم که تمامش پاسخ به درخواست من باشد بعد به سایر کاربرها که در اطرافم در کتابخانه نشسته بودند نگاه کردم میخواستم یکی به من نگاه کند تا بتوانم کمک بگیرم هشتد نه جواب برای یک سال. داستانهایی نوشته بودن دستکارهایی که می میتوانند بکنند پرش از ارتفاع به کمک تناب کشی، شنا، بلمرانی، حتی اسب سواری به کمک قابهای مخصوص وقتی فیلم هایی را که گذاشته بودند دیدم، کمی دلخور شدم وقتی یادم آمد که ویل گفته بود تعمل از را ندارد، در صورتی که به نظر فوقالعاده می رسید. شنا با دولفین ها و قواسی با ماسک اکسیژن همراه با نیروی کمکی از دیگر کارهای ممکن بود. به کمک سندلی های شناور می توانست به ماهیگیری گیری برود. چهار های مخصوص توانخواهان بود که می توانست سوار شود و براند. بعضی عکس یا فیلم هم از خودشان گذاشته بودند چند نفر از جمله ریچی پستهای های قبلیم را به خاطر داشتند و مشتاق بودند بدانند ویل چه می کند. ریچی نوشت انگار اوضاع خوب است روحیش بهتر است من سری جواب دادم شاید ولی خیلی امیدوارم این سفر بتواند مفید واقع شود ریچی پاسخ داد آفرین به تو دختر خوب اگر به توانی به راهش بیاوری، وسعت آسمان هم کفایت نمی اسکوتاگر نوشت یادت نرود چند عکس ازش با ساز و برک تنابه کشی برای من بگذاری. دوست دارم قیافه آدمها را وقتی سر و ته هستن ببینم. آشقشان شدم. آشق این معلولان و پرستارها. بزرگوار بودند و دلگرمی می دادند. و قوه تخیل خوبی داشتند. آن شب دو ساعت نشستم و پیشنهات هایشان را رو روی کاغذ نوشتم. سری به لینک سایت هایی زدم که برنامه هایشان را امتحان کرده بودند. حتی با بعضی ها حرف زدم. عاقبت وقتی کتابخانه را ترک کردم، کلی هدف و برنامه در دست داشتم. می میتوانستیم به کالیفرنیا برویم. به مزرعه فوروینز، یک مرکز تخصصی که کمک های تجربه ا که به گفته وبسایتش به شکلی که یادتان می توانخواه توان هستید. خود مزرعه ساختمان چوبی کم ارتفاعی بود واقع در جنگلی نزدیکی یاسمیت که یک بدلکار موسسش بود. این بدلکار اجازه نداد آسیب نخواهی به زندگیش محدودیت وارد کند. افراد زیادی که به آنجا رفته بودند با خوشحالی و حسی از قدردانی یا در اینترنت گذاشته و گفته بودند که او نگاهشان را به زندگی تغییر داده و حالا جور دیگری به خود و به ناتوانیشان نگاه می کنند. دست کم شش نفر به آنجا رفته بودند. همهشان می زندگیشان متحول شده است. این مزرعه به جز اینکه همه گونه امکانات مورد نیاز توانخواهان را فراهم می هتل لوکسی هم به حساب می آمد. وانهایی در فضای باز داشت که پایین از سطح زمین بودند، با بالاورهای ایمن و ماساژورهای متخصص. کادر هرفهی مراقبت های پزشکی هم داشتند و وانهای آبگرم که می شد داخلش نشست و به ستاره ها چشم دوخت. یک هفته می توانستیم آنجای قامت کنیم. چند روزی هم در ساحل هتلی که ویل می توانست شنا کند و از دیدن خط ساحلی سنگی لذت ببرد. از همه بهتر اوج این تفریحات چیزی بود که ویل هرگز فراموش نمی چتربازی به کمک مربیهای چتر نجات که برای کمک به معلولان آموزش دیدند. تجهیزات مخصوصی داشتند که ویل را به آنها می بستند. از قرار معلوم مهمترین نکته به ایمنی پاها مربوط می شد. و که نباید در هوا حرکت میکردند و به طرف صورت برمیگشتند. گشتند. راهنمای هتل را نشان ویل می ددم. اما قصد نداشتم توضیحی در این مورد بدهم. فقط می خواستم با ویل برویم و بعد تماشایش کنم که چه می کند. در آن لحظات با ارزش ویل بیوز می و آزاد، از آن صندلی هولناک نجات می آفت. از جاذبه زمین رها می شود. تمام اطلاعات را نوشتم و جلو چشمم گذاشتم. هر وقت نگاهم به آن می افتاد، از خوشحالی بال در آوردم. از این فکر که برای اولین بار به یک سفر درست حسابی می رفتم، از این فکر که به هدفم می رسیدم بی اندازه بودم. بیشک همان چیزی بود که فکر ویل را عوض می کرد. صبح روز بعد یاد داشتم را نشان نیتن دادم. توی آشپزخانه دوستکی روی قهفه خم شده بودیم اگر کسی میدید فکر میکرد داریم یواشکی کاری انجام می دهیم همینطور که یادداشت‌هایم هایم را ورق می زدم، گفتم با افرادی که چت بازی کردن حرف زدم از نظر پزشکی هیچ اشکالی نداره پرش با طاب کشییم هم همینطور وسایل مخصوصی دارن که مانع هرگونه فشار احتمالی میشه. باگرانی به صورتش صلح زدم میدانستم وقتی پای مسائل پزشکی ویل وسط باشد، نیتن دیگر مرا قابل نمی برایم برای مهم بود که از برنامه ریزی هم راضی باشد. اینجا تمام چیزای مورد نیازو داره. میگن اگه پیش پیش خبر بدیم و نسخه دکترم ببریم، حتی داروهای جنری که مورد نیازمون رو تهیه می برای همین بیدارو نمیمونیم. چینی به پیشنی انداخت. سرانجام گفت. زایران که خوبه کاری کردی کارستون. به نظرت خوشش میاد شانه بالا انداخت هیچ حدس و گمانی ندارم ولی ورقههای یادداشت را دستم داد لو قافلگیریمون کردی لبخند شیطنت آمیزی که بر لب داشت به یک طرف صورتش کشیده میشد باز هم میتونی تکرارش کنی چرا که نه شب پیش از رفتنم به خانم ترینر هم نشان دادم مکسی کردم خانم ترینر اتومبیلش را به سمت مسیر اتومبیل روی خانه راند جایی که دور از میدان دید پنجره اتاق ویل باشد بعد جلو رفتم گفتم میدونم حساب خرج رو دستتون میذاره اما به نظرم عالیه جدا فکر میکنم اوقات خوشی برای ویله اگه اگه درست متوجه منظورم شده باشید در سکوت یادداشتم را بررسی کرد بعد هم به ها نگاه کرد اگه بخواد خودم هزینم امیدم بابت هواپیما و هتل دلم نمیخواد کسی فکر کنه حرفم را قطع کرد و گفت خوبه هر کاری که لازمه انجام بده اگه فکر میکنی میتونی ببریش رزرو کن منظورش رو را درک میکردم الان وقت فکرهای دیگر نبود پرسید فکر میکنی بتونی رازیش کنی خب اگه اگه حدسم درست باشه آب دهانم را گرد دادم بخشی به خاطر منه ویل خیال میکنه من کار خاصی توی زندگی من انجام ندادم. همیشه به هم میگه که باید سفر کنم باید کاری انجام بدم. با دقت به من صلح زد با سر تصدیق کرد و گفت. آره نظرش همینه یادداشت ها را برگردند. من نفسی تازه کردم در نهایت تعجب دیدم قادر به حرف زدن نیستم آب دهانم را به سخت گرد دادم چیزی که قبلا گفتید هیچ وقت منظورم خوشحالی ویل برای من مهمتر از هر چیزی من من ظاهرا نمیخواست منتظر بقیه حرفم بماند سرش را پایین آورد انگوشتایی ظریفش به زنجیر دور گردنش رفتند آره خب بهتره برم تو فردم میبینمت به, به هم بگو چی گفت پاتریک نرفتم میخواستم بروم ولی چیزی مرا از پارک صنعتی دور میکرد با آن طرف خیابان رفتم و سوار اتوبوس شدم و راهی خانه من شدم 180 قدم را تا خانه رفتم و وارد شدم شب گرمی بود و تمام پنجرهها باز بودند تا نسیم داخل شود مادرم توی آشپزخانه داشت آشپزی میکرد و با خودش آواز میخواند پدرم لیوان دستدار قهوه به دست روی کاناپه نشسته بود. پدر بزرگ روی صندلیش نشسته بود و چرت می زد. سرش به یک طرف آویزان بود. توماس با ماژیک روی کفشش نقاشی می کشید. سلام کردم و از کنارشان رد شدم. تعجب می کردم چقدر زود این احساس در من ایجاد شده که دیگر به آنجا تعلق ندارم. ترینا توی اتاقم سرگرم کار بود. ذर्वेی به در زدم و داخل شدم. دیدم پشت میز نشسته و روی انبوهی کتاب خم شده است. عینکی روی بینیش بود که تا حالا ندیده بودم. دیدن او وسط چیزهایی که من برای خودم تعیی کرده بودم، غیرعادی بود. دیوارهایی که من با وسواس تمام رنگ کرده بودم، حالا پر از های توماس بود. هنوز هم داشت با خود گوشه پردم را خط خطی می کرد. افکارم را جمع جور کردم تا ناخوشاگاه عصبانی نشوم. نگاهی به پشت سرش کرد و گفت مامی کارم داره به ساعت نگاه کرد فکرم داره برای توماس شایی درست میکنه آره توماس داره ماهی لقمه ای میخوره به من زد بعد عینکش رو برداشت تو خوبی؟ چرا قیافت مثل ان شده؟ خودت میدونم. این رژیم مسخره رو گرفتم. همیشهم هم کهیر میزنم. دستش رو به چانه برد. رژیم لازم نداری؟ آره. خب. یکی از تو کلاس حسابداری دو که ازش خوشم میاد. باید تلاشم رو بکنم. که ای گنده ای توی صورتم که آدم رو باید قیافه میکنن. روی تخت نشستم. رو لحافی من بود. میدانستم پاتریک از این رو لحافی به خاطر شکل‌های هندسی مسخره‌اش خوشش نمی‌آید. تعجب می‌کردم که چطور کاترینا بدش نمی‌آید. کتابش را بست و به پشت صندلی تکیه داد. خب، چه خبر؟ لبم را به دندان گرفتم. دوباره پرسید. ترینا، به نظرت من میتونم درسم ادامه بدم؟ درس تو ادامه بدی؟ چه درسی؟ نمیدونم. چیزی در رابطه با مد، طراحی، شاید فقط خیاطی خب، دوره هاش هست. دانشگاه ما که داره. اگه بخوای میتونم برات تحقیق کنم. ولی افرادی مثل منو میگیرن؟ کسایی که هیچ ویژگی خاصی ندارن. خودکارش را پرت کرد هواب و دوباره گرفت. آشق دانشجوهای سن و سال دارن. به خصوص اونهایی که شغل قابل قبول و با ارزشی دارند فاهد مکالمه را حتما باید بگذرونی. ولی چرا که نه؟ چرا؟ حالا چی شده به سرت زده درس بخونی؟ نمیدونم. ویل چند وقت پیش بهم گفت. این که باید کاری برای زندگی میکنه. خب، بعد؟ فعلا دارم فکر میکنه. شد وقتش شده که منم کار تو رو بکنم. حالا که بابا از پس زندگیشون برمیاد. شاید تو تنها فرد لایق خانواده نباشی که کاری برای زندگیت میکنی. باید شهریه بدی؟ میدونم. پس انداز دارم. فکر کنم کمی بیشتر از پولی باشه که تو تونستی پس انداز کنی میتونم کمک هزینه بگیرم شایدم وام اونقدر دارم که شروع کنم با خانومی آشنا شدم که نماینده مجلس بود گفت که دوس و عاشنهایی داری که میتونن به کمک کنن کارتشو داد بهم. به کاترینا چرخی توی سندلی زد و گفت سب کن درست متوجه نشدم خیال میکردم میخوایی پیش ویل بمونی فقط هم به این خاطر که میخوایی زنده نگهش داری به سقف چشم دوختم آره اما اما چی؟ پیچیده است ساده است ظاهرا اسکناسم که چاپ میکنی از صندلی بلند شد و رفت در اتاق را بست صدایش را پایین آورد تا بیرون نرود لابت فکر میکنی داری کار تو از دست میدی آره میخواد بره فوری گفتم نه اصلا این فکر رو نمی کنم. فقط برنامه برای خودم دارم برنامه های بزرگ بعدم بهت نشون میدم اما دستم را بالای سرم دراز کردم و انگشتانم رو توی هم کردم ولی من آشق ویل شدم خیلی زیاد با دقت نگاهم کرد قیافه متفکری به خودش گرفته بود هیچ چیزی ترسانگ از قیافه متفکر خواهرم نبود وقتی مستقیم مرا نشان نمیرفت نه م... گفت یه جالب شده دستم را پایین آوردم میدونم کار میخوای تا؟ این حرفیه که بقیه معلوله به هم میکن که توی اینترنت با هم حرف میزنیم نمیشه هر دو بود نمیتونه هم پرستار باشی و دستم را بالا بردم و روی صورتم گرفتم سنگینی نگاهش را حس میکردم خودش میدونه؟ نه نمیتونه من فقطه خودم را با صورت روی تخت برد کردم. بوی توماس میداد، بوی مارمایت. اصلا نمیدونم چی فکر می کنم. فقط میدونم بیشتر آقا ترجیح میدم با اون باشم تا کسی دیگه. حتی پاتریک؟ همین طور بود. واقعیتی که اعتراف به آن حتی پیش خودم هم سخت بود. حس کردم گونم سرخ شد. توی لحاف گفتم آره، گاهی آره. لحظاتی چیزی نگفت، بعد گفت گندت بزنم، خیال میکردم این منم که دوست دارم خودم رو توی درد سر بندازم کنارم روی تخت راست کشید و هر دو به سخت خیره شدیم از پایین صدای ناموزون سوت پدر بزرگ میآمد. همراه با جیغ و دنگ دنگ توماس که داشت از باپازی کنترل از راه دورش رو را عقب و جلو میکرد نمیدانم چرا چشمم پر از عشق شد. لحظاتی بعد دست خواهرم را دور خودم حس کردم. هی دیوونه. <تصفح> هر دو زدیم زیر خنده. صورتم را پاک کردم و گفتم. <تصفح> نگران نباش. بی به آب نمیزنم عالی. چون هر چی بیشتر فکر می میبینم موضوع خیلی جدیه. یعنی چی؟ خب موضوع مرگ و زندگیه تو روز به روز بیشتر درگیر زندگی این مرد میشی درگیر این راز عجیب و غریبش یه جورایی نزدیکی و سمیمیت کازه بی پیش اومده شاید هم شدی و میخوای ادای فلورانس نایتینگل رو در بیاری باور کن اصلا اینطور نیست همینطور درست کشیدیم و به سخف زول زدیم کمی احمقانه است. فکر عشق عاشقی با کسی که نمیتونه به منظورم اینه که بهت عشق بده شاید از این واقعیت که سر انجام تو با دارید با هم زندگی میکنید حل شدی حالا داری اینجوری واکنش نشون میدی میدونم درست میگی شما دو نفر مدتهای مدیدی با هم بودید تعهد داری و نباید به کس دیگه ای دل ببندی. خصوصا وقتی که سرش با تمرینش گرم و هم شد قهرمانی شد باید از ویل دل بکنی. منظورم اینه. یادم میاد که میگفتی چه آدم عوضییه. <تصفيق> هنوزم گاهی میگم. خواهرم دستمال کاغذی برداشت و چشمم را پاک کرد. بعد چشمش را روی گونه هم کشید. دانشگا رفتن فکر خوبیه. چون بیا رک باشیم. چه کلک ویل کنده بشه چه نشه تو به شغل درست حسابی احتیاج داری. نمیخوای که تا آخر اون بری خونه های مردم رو پرستاری کنی. کلک ویلکنده کنده نمیشه. مشکلش حل میشه خدا کنه. مادرم توماس را صدا میزد صدایش را می که در طبقه پایین آواز میخواند. توماس، تم، تم، تم، توماس. ترینه آه امیقی کشید و چشمش را مالید. همشب برمیگردی پیش پاتریک آره میخوایی بریم بیرون چیزی بخوریم و تو بحنامت رو نشونم بدی؟ ببینم مامی به جای من توماس رو میخوابونه؟ بیا بری. حالا که انقدر پول داری که بری دانشگاه باید مهمونم کنی فکر رو به ده بود که به خانه پاتریک رسیدم برنامه برای سفر به طرز شکفتنگیزی مورد قبول صد درصد کاترینا قرار گرفته بود حتی طبق عادت همیشهش نگفت آره ولی بهتر است که با خودم فکر کردم شاید چون میخواست رعایت حالم را بکند چیزی نگفت چون کاملا پیدا بود که مشتاق این سفر هستم چند بار هم تکرار کرد اوه باورم نمیشه چنین چیزی پیدا کردی موقع پرش با تنابه کشی باید کلی ازش عکس بگیری یا گفت فش رو مجسم کن وقتی داری از چت بازی براش حرف میزنی فوقولده است آدم های توی بار حتما خیال کردن ما دو دوست سمیمی هستیم و خیلی همدیگر دیگر رو دوست داریم وارد آپارتمان پاتریک شدم از بیرون تاریک و خاموش بود قرد در افکارم بودم از خودم پرسیدم یعنی پاتریک سر شب هم تمرین دارد توی راه رو کیفم را انداختم زمین و در اتاق نشیمن را باز کردم. داشتم با خودم فکر میکردم چه خوب که چراغ را برای من روشن گذاشته. و بعد دیدمش. پشت میز نشسته بود و میز هم برای دو نفر چیده شده بود. وسط میز شم روشن بود. همین که در رو پشت سرم بستم بلند شد. نصف بیشترشم سوخته و به ته رسیده بود. گفت مذرت میخوام. نگاهش کردم. احمق بودم. حق با تو. این شغل تو فقط برای شش ماهه. رفتارم بچه بود. باید بهت افتخار کنم که کار به این با ارزشی انجام میدی و اینقدر جدی گرفتی. من فقط کمی گیجوویت شدم. جده متاسفم. دستش رو دراز کرد و من گرفتم. خیلی هم خوبه که داری کمکش میکنی. جای تحسین داره. دستش را فشار دادم. ممنونم زد. نفس کتایی کشید و دوباره شروع به صحبت کرد. انگار حرفایش را قبلا با خودش حسابی تمرین کرده بود. شام درست کردم. شرمنده که بازم سارده. از کنارم رد شده از داخل یخچال دوتا بشقاب بیرون آورد. قول قرمیدم بعد از مسابقه بریم بیرون یه شام عیونی بخوریم. یا وقتی محدودیت خوردن کربوهیدرات ندارم من فقط لپایش رو پاد کرد و ادامه داد این روزا انگار نمیتونم به چیز دیگه ای فکر کنم شاید مشکل اینجا بود و حق با توه چه دلیلی وجود داره که دنبالم بیای؟ مسئله خودمه عوضش تو هم حق داری به کارای خودت برسی من گفتم پاتری لو اصلا نمیخوام با من بحث کنی فقط فراموش کن بوی اوت کلان میداد و چشمانش در اشتیاق بود دو واقعیتی که باری را برشانهایم میگذاشت بشین حالا بیا شام بخوریم بعد هم نمیدونم بیا خوش باشیم از ورزش حرف نزنیم و عوضش از چیزای دیگه حرف بزنیم بعد خندهی زورکی کرد نشستم و به میز زل زدم لبخند زدم گفتم چقدر عالیه پاتریک بلد بود با سینه بوغلمون صد جور غذا درست کند. سالاد کاهو خوردیم سالاد پاستا و سالاد دریایی و سالاد خوشمزه میوه که برای پودینگ آماده کرده بود من شراب خوردم و پاتریک آب معدنی. مدتی گذشت و ما به آرامش رسیدیم آنجا روی من پاتریک نشسته بود پسری که مدتها توجهی به او نداشتم نازنین و مهربان بود با همهی وجودش مراقب بود از ورزش و مسابقه حرف نزند هر وقت صحبت به آن مسیر کشیده میشد میخندید. پایش را از زیر میز به پای من میزد و پاهایمان در هم پیچیده بود اندکی که گذشت حس کردم یک جورایی بدنم منقبض شده و معذب هستم خواهرم درست میگفت زندگیم از روال عادی خارج شده و ارتباطم با افراد دور و قطع شده بود. وضع اسفناک ویل و رازهایش مرا در خود غرق کرده بود. باید حواسم میبود که از سایر افراد کافل نمانم. کم کم از حرفایی که به گفتم احساس گناه کردم. پاتریک نمیگذاشت بلند شوم. حتی نگذاشت کمکش کنم میز را جمع کنیم. ساعت یازده و پانزده دقیقه پاتریک بلند شد و ظرف‌ها جمع کرد. و به آشپسخانه برد توی ماشین زرشوی گذاشت. من نشستم و به او که برایم حرف میزد گوش دادم. تمام مدت هم محل پیوند گردن و شانه ام را میمالیدم و میکوشیدم انقبازی را که در آنجا حس کردم از بین ببرم. چشمانم را بستم تا کمی آرام شوم. برای همین دقایقی گذشت تا متوجه شدم پاتریک ساکت شده است. چشمانم را باز کردم. پاتریک به من زل بود. برنامه سفرم دستش بود. چند ورق را بالا گرفت و گفت. اینا چیه؟ برنامه سفر. همون که بهت گفته بودم. یادداشت هایی را که بخوااهرم نشان داده بودم یک یکی ورق زد. برنامه سفر، عکس ها، ساحل کالیفرنیا همه را دید. وقتی شروع به حرف زدن کرد صدایش به طرز قریبی غیر غیرعادی بود. من خیال می‌کردم. من خیار میکردم منظورت لورده. چی؟ نمیدونم یا استوک یا اینجور جاها وقتی گفتی نمیتونی با من بیای فکر کردم واقعا کار داری مربوط به دوادرمون از این چیزا اینکه شبیه با ناباوری سرش را تکون داد. اینکه سفر تفریحیه. یه اما نه برای من، برای خودش سگرمه هایش در هم رفت نه سرش را تکان داد به تو که اصلا خوش نمیگذره وانه به گرم زیر آسمون پرستاره شنا با دولفینا اوه، اینجا رو ببین هتل پنج ستاره و سرویس شبانه روزی به من نگاه کرد سفر کاری نیست، ماه واقعیه احمق نبا خودتی، تو از ازم انتظار داری اینجا بشینم و خودت با یه مرد دیگه بری بچنین پرستارش پرستارشم میاد اوه، بله، نیتن، قضیه حل شد پاتریک دست بردار، موضوع کمی پیچیده است پس لطف کن و برام توضیح بده یاد را به طرفم گرفت لو برام توضیح بده طوری که حالیم شه برای من مهمه که ویل به زندگی علاقه پیدا کنه روزای خوبی پیش رو داشته باشه و تو هم توی این روزای خوب باشی؟ بینصافی نکن ببین حالا شده من ازت بخوام دست از کاری که عاشقشی بکشی؟ شغل من شامل وان و آبگرم و زنایی غریبه نمیشه اگه میشد اهمیتی نمیدادم تا میتونی وانه آبگرم با زنهای مختلف داشته باشی هر وقت دوست داشتی همین زورم را میزدم متبسم باشم با این امید که باتری کم لبخند زند ولی خبری از لبخند نبود لو چه به دست میداد اگه میخواستم با چه میدونم مثلا با همین لین که وزی روشم به هم ریخته برم سفر چون این زن به شادی نیاز داره به شادی نیاز داره؟ یاد افتادم زنی با موهای تلایی پرچین و شکن و پاهایی کشیده و زیبا نخداگاه به نظرم عجیب آمد که چرا این اسم اول از همه سر زبانش آمد چه حسی به دست میده که بگم هر روز با هم شام و نار میخوریم و توی وان آبه گرم میشین و با هم میریم گردش اونم سفر راه دور فقط به این خاطر که کمی افسرده است اینا واقعا ناراحتت نمیکنه. ویل کمی افسرده نیست میخواد خودشو بکشه میخواد بره دیگنیتاسو به زندگی فلاکت بارش پایان بده سربان قلبم را میشنیدم نباید موضوع رو به چرخونی و جور دیگه بیانش کنی تو خودت کسی بودی که بهش میگفتی علیل تو خودت میگفتی که کبریتی بیخطره میگفتی رئیس واقعی کسی که نمیچونه مایه نگرانیشه. یاد داشتها را روی میز گذاشت لو ولی حالا مایه نگرانیه صورتم را توی دستم گرفتم و لحظاتی به همان حال ماندم از راهرو صدای حرف و باز شدن در می آمد. بعد با بسته شدن در سکوت برقرار شد پاتریک دستش را به آرامی روی لبه میز می کشید ماهیچه ی آروار هشتکان می می چه حالی با آدم دست میده. مثل اینه که داری مسابقه دو میدی ولی همیشه با فاصله خیلی کمی از بقیه عقبی اسم می کنم نفس عمیقی کشید گویی میخواست بر خودش مسلط شود اسم می کنم خطری در پیچ بعدی هست که ظاهرا همه میبینن الا خودم. به چشمانم نگاه کرد فکر نمی کنم برخوردم غیر منطقی باشه. ولی دوست ندارم بری اشکالی نداره دوست نداری با من نیا ولی دلم نمیخواد به این این سفر بری با اون اما من نزدیک هفت ساله که با هم دوستیم فقط پنج ماه میشه که با این مرد و مسائلش آشنا شدیم پنج ماه اگه تو حالا باش بری داری پیامی در مورد تموم میدی در مورد حسی که به این دوستی داری اعتراض کرد هیچ معنی خاصی نداره داره اگه من بگم نرو ولی تو بری آپارتمان کوچکی که درونش بودیم بعد جور ساکت و خاموش بود پاتریک با قیافهای به من زل زده بود که هرگز ندیده بودم وقتی شروع به حرف زدن کردم صدایم بیشتر از نجوا نبود اما به من نیاز داره همین که این حرف را زدم و کلمات را شنیدم که چگونه در فضا پیچیدند و دوباره به هم آمدند فهمیدم اگر این حرف را او میزد چه حسی به من دست میداد آب دهانش را قورت داد. سرش را طوری تکان داد که گویی معنی حرفم را درست نمیفهمد دستش روی میز قرار گرفت. بعد به من نگاه کرد. هرچی من بگم تو با صرف خودت می‌زنی. ای در مورد پاتریک وجود داشت. با از این حرفا بود که من خیال میکردم پادشیک من چشمانش را بست فقط یک نز بعد برگشت و به طرف اتاق نشی من رفت بقیه ظرفهای کثیف همچنان روی میز بودند